پادشاه راکشسها یعنی راوانا با نیرنگ سیتا همسر راما رو دزدید و به قلعه خودش برد. دو برادر یعنی راما و لکشمانا با راهنمایی یک هیولا به کنار دریاچه پامپا رفتند تا ردی از سیتا پیدا کند. اکنون بقیه داستان جستجوی میمونها برای یافتن سیتا راما زاری می کرد و در این اندیشه بود که چگونه به جاناکا شاه ماجرای گم شدن سیتا را بگوید و چگونه خانواده خودش با اطلاع از گم شدن همسرش اندوهگین خواهند شد لاکشمانا او را آرام میکرد و دلداری میداد و میگفت اکنون زمان غم و سوز و گداز نیست بلکه هنگام عمل است راما که از سخنان برادر دلگرم شده بود، به آن سوی دریاچه پامپا که پوشیده از نیلوفرهای آبی بود که ساغاهایشان را برای خوشامدگویی خم می پیش رفت. همچنان که به ساحل آن سو نزدیک میشد، سوگریوا اونها را دید و حراسان از بیباکی و سلاح‌های های سهمگینشون شتابان به کوه هیمالیا عقب نشینی کرد و به وزیرش هانومان گفت میمونه ارجمند. ببین که آیا این دو با هدفی سلحامیز اومدند یا نه؟ هانومان بیدرنگ به راما و لاکشمانا نزدیک شد و با عدب تمام به اونها تعظیم کرد و این سخنان رو گفت ای شما که زیباترین این چهره ها رو دارید برای چه به این مکان اومدید؟ آیا ممکنه به من بگید که کیستید؟ ارباب من سوگریواست وست سروری شجاع و درستکار که اندوگین این سو و سو سرگردانه چون برادرش او را از همسرش و پادشاهیش محروم کرده. من هانومان وزیر او هستم. او منو فرستاده که از شما پرسجو کنم. سوگلیوهای شریف خواستار دوستی شماست. بدان که من پسر وایو خدای باد هستم. وقتی راما این سخنان را شنید و به لاکشامانا گفت این وزیر همون شاه میمون هاست که کاباند ها از اونا با ما سخن گفت. معدبانه با اونا حرف بزن لاکشامانا، زیرا هانومان اگر در دستور و سرودهای ودا استاد نبود، نمیتونست به این خوبی حرف بزنه. آنگاه لاکشامانا خطاب به میمون نجیب زاده گفت در حقیقت ما دنبال سوگریوا میگردیم و پس از اینکه همه ماجراهایی رو که او و برادرش رو به دریاچه پامپا کشانده بود تعریف کرد، گفت نمیدونیم دیوی که سیتا رو برده کجاست، نه محل سکونتش رو میدونیم. بنابراین ما رو پیش سوگریوا ببر که او پناه ماست. حانومان قدرتمند، پسر وایو، دو پهلوان را بر پشت خودش گذاشت و یک راست به کوه هیمالیا رفت. در آنجا ورود اونها را به سوگریوا اعلام کردند و به او خبر دادند که اونا کیستند. سوگریوا از آمدنشون بسیار خوشحال شد و به اونا خوش آمد گفت و این چنین سخن گفت. از آنجا که شما نجیب زاده و درست کار هستید و می خواهید با من که یک میمونم دوستی کنید بیشترین افتخار و بالاترین سود نصیب من میشه. اگر واقعا شما این همدستی و اتحاد رو می خواهید، این همدست من. اون رو به نشانی دوستی و همدلی بگیرید. راما به خوشنودی دست او را گرفت و هر دو با هم دور آتش راه رفتند و اون رو گواه راستگوی خود گرفتند. آنگاه سوگریوا گفت: وزیرم هانومان سرنوشته و سرگذشت شما و اینکه چطور همسرتون رو رو بودن برامون گفته یقین داشته باشین که من اونو برمیگردونم چون هنگامی که دیو او رو در عربهش بالا میبورد دیدم که داشت فریاد میزد وای بر راما دریغ از راکچامانا او شال تلایی و بعضی از زیبرهاش رو انداخت که همینجا هستند راما وقتی متعلقات همسر محبوبش رو دید به تلخی زاری کرد و گفت. لاکشامانا نگاه کن وسایلش رو ببین لاکشامانا گفت درسته من خلخالهاش رو میشناسم چون غالبا جلوی پاش تعظیم کردم راما گفت سوگریوا به من بگو که آیا دیدی راکشاسا همسر منو به کجا و کدوم مکان برد سوگریوا گفت متأسفم نمیدونم که اون دیو کجا زندگی میکنه اما اینو بهت قول میدم که من و بستگانم اونو پیدا میکنیم. من هم از شما که بر واقف هستید میخوام در برابر والین که همسر و سلطنتم را از من ربوده بوده به کمک کنید راما جواب داد مطمئن باش که بهت کمک میکنم و از این لحظه به بعد در کنارت خواهم بود زیرا اندوه تو و من یکسانه و دوستان باید به کمک همدیگه بشتابند. سوگریوا گفت شاید ندونی کاری که بر عهده توست چقدر عظیمه والین تواناترین و ورزیده ترین جنگاوره یک بار که آسورا دوند و بهی به شکل یک گاومیش دریا و کوه ها رو به پیکار فراخوند والین به طرفداری از اونا با او جنگید و پس از نبردی بحشدناک رو کشت و جسدش رو یک فرسنگ اونسونتر پرت کرد. جسد همین جاها افتاد نزدیک اینجا هفت درخت شالای تنومند رویده که والین میتونست برگهای های اونا رو در یک لحظه بکنه قدرت او تا این حد رامای شریف و من میترسم ترسم که نکنه حریف او نباشیم. راما گفت نشون بده ببینم جسد دوندوبهی کجاست. سپس سوگریوا راه رو نشون داد و وقتی به جسد تحلیل رفته که دوندوبهی رسیدند اون را برداشت و با قدرت بسیار درست سفرسنگ اون سوتر پرتابش کرد. اما وقتی دید که سوگریوا هنوز تردید داره کمانش رو برداشت و با تیری قدرتمند همه ی هفت درخت شالار رو از بن برید. سوگریوا بلافاصله خوشحال شد و بی‌درنگ رهسپار ها شد که والین در آنجا بود. اما افسوس بر سوگریوا در نخستین نبرد تنها این شانس رو داشت که جانش رو برداره و فرار کنه. او از راما گله کرد و گفت: چرا جلو نیامدی به من کمک کنی؟ راما جواب داد: چون که نمیتونستم تو رو به جا بیارم، بگذار دوباره امتحان کنیم و این بار یک گل گاجا پوشپی بر سر بگذار تا من تو را از برادرت بشناسم بعد همه به کشکیندها برگشتند و خودشون رو در میان درختان پنهان کردند اونا صدای نعره سوگریوا رو که از دل برآورد شنیدند که آسمانها رو به لرزه در آورد. والین با شنیدن این نعره بیش از پیش خشمگین شد از شهر خودش بیرون اومد تا بجنگه و چون با سوگریوای طلای ایران روبرو شد نبردی سخت میان اونا در گرفت بعد راما از همون جایی که در جنگل ایستاده بود سوگریوا رو دید که هر لحظه ناتوانتر میشد و برای یافتن او پی در پی به این طرف و اون طرف نگاه میکرد. با دیدن این منظره تیری در چله کمانش گذاشت و اون را به طرف قلب والین رها کرد والین از پا درآمد و بر زمین افتاد همین که راما همراه با لاکشمانا که در پی او میومد جلو رفتند، والین رو به او کرد و گفت تو که بزرگزاده و پسر پادشاه هستی، بدین سان که با دیگری میجنگیدم به یک تیر کشتی، تو ای راما که در سر و سر جهان به مهربانی و محبت زبان زده همیگان هستی و میدانی که چه کاری مناسب کدام مقام و موقعیت است و عزم استوار داری، چگونه میتوانی خصلت های شاهانه را به نمایش بگذاری؟ با آنکه سوگریوا برای تصاحب این سرزمین می جنگید، خوب فکر کن که آیا دخالت تو در جنگ دخالتی غرورآفرین بود؟ راما در پاسخ این سرزنش والین گفت در حد تو نیست که من اینطوری سرزنش کنی. من بر جایی که تو سکونت داری نفوذ داشتم. تو نمی دونی چه چیز درست و شایسته است زیرا تارا همسر برادرت را رو بودی و کشور او را از چنگش بیرون آوردی. اکنون بدان که من به عنوان برپادارنده ادالت در قلمرو بهارتا به خاطر جنایتات تو رو کشتم آنگاه والین ماهیت گناهش رو دریافت و از راما خواهش کرد تا از فرزندش آنگادا نگهداری کنه و ادامه داد ممکنه خواهش کنم که تارای زیبا رو مجازات نشه زیرا تقصیر من بود که او رو به بیراه کشندم بعد رو به برادرش سوگریوا گفت افسوس که سرنوشت برای من دشمنی مقرر کرد و در이가 که عشق برادر رو به برادر بین ما وجود نداشت اکنون فرمانروایی بر ساکنان جنگل از آن توست بنابراین این تاج پادشاهی رو از تارک من بردار به خصوص خواهش می‌کنم به پسرم باش که با چشم عشق بار اینجا کنار من روی زمین دراز کشیده و در سالهای حساس زندگیش آموزش‌های غمانگیزی دیده او رو از آسیب بر کنار دار و فرمان‌های راما رو انجام بده چون اگر انجام ندی گناهه و اگر قانون او پا بگذاری تو رو تنبیه خواهد کرد. بعد سرش به عقب افتاد. دهانش باز موند و دندانهای تیز و درندش نمایان شد. و آن میمون بدکار مرد. اندوه تارا و آنگادا تلخ و دردناک بود. سوگریوانی زاری می کرد که برحال برادری را از دست داده بود. اما راما، آنها را دلداری میداد و گفت که هیچ کس را از سرنوشت گریزی نیست. آنگاه لاکشمانا قدم پیش گذاشت و دستور داد پشته هیزم هیزوم مرد سوزان را آماده کنند. سپس پیکر والین با تمامی آینهای بزرگداشت مردگان روانه شد. در حالی که میمونها بر آن آب می پاشیدند. هنگامی که سوگریوا به عنوان پادشاه و آنگادا به سمت ولیعت تعیین شدند، فصل پرباران آغاز شده بود. بنابراین راما و لاکشامانا در غاری در کوهستان پراش روانا ماندگار شدند و چشم به راه کارتیکا ماندند یعنی هنگامی که سوگریوا قول داده بود گشتن به دنبال سیتا را آغاز کند چون پاییز در رسید و هنوز هیچ نشانی از سوگریوا نبود راما آرام آرام به قول هم پیمان خیش تردید کرد فکر سیتا اندوهش را تازه می کرد بلاکشمانو نیز در تلاشی که برای آرام کردن او از خود نشان میداد، از میمون بیشتر عصبانی شد. در همین هنگام سوگریوا در کیشکیندهها کیندها در لذت‌های قلمروی نویافتش غرق شده بود و روزها را با بیخیالی در کنار همسرانش می گذراند. یک روز خانومان به او هشدار داد که زمان کمک به خیلی وقت است که رسیده است. آنگاه سوگریوا اندیشناک قولی که داده بود به نیلا فرمان داد که لشکر را فرا و بیدرنگ به خوشگذرانی خود بازگشت ناگهان قوقایی بزرگ از بیرون شهر برخاست و وزیران شتابان پیش سوگریوا آمدند تا به او خبر دهند که لاکشامانا به دروازه ها رسیده است اما سوگریوا اعتناعی نکرد آنگاه آنگادا وارد کاخ شد و به شاه اعلام کرد که باید به پیشواز لاکشمانا برود اما سوگریوا غرق در خوشگذرانی. اعتناعی به او هم نکرد. سرانجام، لاکشامانای بسیار خشمگین وارد کشکینده ها شد. صدای میمون های حراسانی که به هر سو پراکنده می شدند، رو هشیار کرد. هانومان به او توصیه کرد که لاکشامانا رو با نهایت فروتنی و احترام پذیرا بشه چون اشتباه خود او بوده که باعث شده وقت تعیین شده بیهوده بگذره و تلفشه. وقتی لاکشامانا وارد کاخ شد، فقط خواهش و تمنای مؤدبانه تارا سوگریوا رو از خشم کشاتریا رهایی داد. او رو ببخشید که بی به گذشته روزها وقت خودش رو به خوشگذرونی سپری کرده. کمترین کاری که کرده اینه که لشکرش رو فراخونده و اکنون اونا آماده و مجهز ایستادند تا کار گله دیوهای راوانا رو یکسره کنند. لاکشامانا که اندکی آرام شده بود، از اونا خواست که فورا همه اون لشگر رو به اقامتگاه راما بیارند و سوگریوا دستور داد که تمام میمونهای زمین فراخونده بشن. سپس همچنان که روز به پایان میرسید، در آسمان بدون ابر به غار کوه پراش رسیدند و راما به پیشواز آنان اومد. سوگریوا به آسمان پرستاره شب خیره شده بود، قرص ماه در آسمان بدون ابر و شب پاییزی آراسته به پرتوهای نغرهی زمان را مساعد و فرخنده می کرد. سوگریوا به راما گفت لشکر بزرگ من اکنون گرده هم اومدن و همه تابع دستور من هستند. ای راما پهلوان بزرگ، بگو چه دستوری به ما می دی؟. راما گفت پیش از هر چیز باید بدونم که آیا سیتهای من زنده هست یا نه و راکشاسا کجا آشیانه داره؟ وقتی اینو فهمیدیم باید بیشتر مشورت کنیم. در این مورد من سرنوشتم رو به دست شما سپردم هر اقدامی که لازمه انجام بدید. سپس سوگلیوا نفراتش رو به تمام نقاط زمین فرستاد. گروهی رو به فرماندهی ویناتا به شرق تا منتهی الی کوهی که خورشید از اون برمیآمد گسیل داشت. و لشکری رو به سرکردگی هانومان و آنگادا به جنوب فرستاد. سپس لشکری بزرگ رو به فرماندهی سوشنا پدر تارا به غرب فرستاد و شاتابالا رو به سوی هیمالیا گسیل داشت تا دا بخش شمالی رو جستجو کنه. سوگریوا به هر فرد و هر فرمانده جزئیات دقیقی از مناطقی که سر راهشون قرار داشت داد. راما از اینکه سوگریوا تا این حد زمین رو میشناخت شگفت زده شد و سوگریوا بهش گفت یادته بهت گفتم که برادرم چگونه دندوبهی رو کشت؟ هنگامی که والین داشت دندوبهی رو دنبال میکرد این شکار حراسان او رو به هر گوشه ی زمین کشند بنابراین با همراهی برادرم ویژگی همه سرزمین ها رو آموختم سوگریوا به لشگر میمون دستور داد که یک ماهه همراه با اخبار برگردند به خصوص به هانومان شریفترین و تواناترین فرماندهانش دستور داد که این تمام با موفقیت تمام کنه. در این هنگام راما پیش اومد و خطاب به میمون توانا گفت اینک که فراتر از همه انتخاب شدی و مخصوصاً مرد اطمینان قرار گرفته ای این انگشتر که نامم روی اون نوشته شده به تو میدم تا هر وقت سیتا رو پیدا کردی اونو بهش بدی خانمان ارجمند تعظیم کرد انگشتر رو گرفت اون رو روی سرش گذاشت سپس بار دیگه در برابر پاهای راما خم شد و رخصت رفتن گرفت همچنان که گله ها در هر سو و هر دیار در جستجو بودند، یک ماه به آرامی سپری شد و در واپسین روز هنگامی که هانومان و لشکریانش جنگل‌های ویندیهیا را زیر پا گذاشته بودند، با هم جمع شدند و به طور جدی به شور نشستند و گفتند: وقت گذشته و اگر با ماموریت انجام نیافته برگردیم، مستحق چیزی جز مرگ نیستیم. هانومان چنان ناراحت شد که میخواست خودش را بکوشد. اما میمونهای دیگه دخالت کردند و گفتند که باید یک مراسم قربانی برگزار کنند. در این لحظه، هر کسی که شاهد ناراحتی و تزلزل اونا بود، از آسمان ها فرود اومد زیرا تصور میکرد که یک میمون در حال مرگ وجود داره که غذای خوبی براش حساب میشه. اما همچنان که نزدیک میشد، آنگادا برای ملاقات او جلو دوید و با لحنی رقتبار بدبختی رو که دوچارش شده بودند، براش گفت و گفت: ما دنبال راکشاسایی هستیم که یکی از برادران اتو را هنگام بردن سیتا دیده جاتای او بود که به راما گفت همسرش رو راوانا رو بوده. اما ما نمیتونیم بفهمیم که محل زندگی راوانا کجاست. کرکس هدف اولیه خودش را رها کرد و آنگادا او رو به عقب هدایت کرد، جایی که میمونها با متحدان خود خرس‌ها در یک صف ولی غمگین نشسته بودند و با صدایی بم و آرام کننده گفت: مرا به نام سامپاتی بشناسید، برادر جاتایو هستم و با آن که یک بار وقتی با برادرم خیلی نزدیک به خورشید پرواز میکردیم بالهایم سوخت و به این سبب قدرتم را از دست دادم اما هنوز هم میتونم یاریگر راما باشم چون خود من اون بانوی زیبارو رو دیدم که راوانا او را در عرابش به هوا میبرد او پیوسته گریه میکرد و فریاد میزد راما، راما، لاک شامانا. او باید سیتا بوده باشه. من همچنین میتونم به شما بگم راکشاسایی که او رو روبود بود راوانا در شهر لانکا زندگی میکنه. این شهر در جزیره در صد فرسنگی بالای اقیانوس قرار داره و ویش و کارمان صنعتگر خدایان اونو ساخته. همینطور که صحبت میکرد و داستانی بینظیر میگفت بالهایش از نو رویدند. چون نیشاکارای ریشی به او قول داده بود که اگر خدمتی به رامای قدرتمند بکنه این طور خواهد شد اما پیش از آنکه بالهاش به طور کامل در بیان میمونهای هیجان زده شتابان به سمت اقیانوس رفتند زیرا مشتاقانه امیدوار بودند که سیتا را پیدا کنند اما هنگامی که به اقیانوس رسیدند دریافتند که عبور از آن همونقدر مشکله که گذشتن از آسمان و باز هم برای مشورت دور هم نشستند هر کدام میکوشیدن تا هرچه میدونه بالا بپره اما هیچ کدوم از اونا نتونست بیش از صد فرسنگ بپره. حتی آنگادا با وجود آن که جوانی بزرگزاده و قدرتمند بود نمیتونست از عهده این مسافت وحشتناک بر بیاد. آنگاه جانباوان شاه خیرس ها برخواست و با هانومان صحبت کرد. تو پسر وایو، خدای باد، در هر علمی استادی چرا ما زده و تنها اینجا نشستی؟ پسر باد، برخیز و از اقیانوس عظیم عبور کن، با سرعت بسیارت بتاز همچنان که ویشنو خدای بزرگ جهان را با سه گام خیش در نوردید. آنگاه خانومان که از سخنان دلگرم کننده اعتماد و نیروی تازه گرفته بود، خودش را باد کرد، در باد دمید و دم بزرگش را از شدت شادی برافراشت میمون قدرتمند به یاری قدرت نویافتش از جا بلند شد و بیدرنگ از کوه ماهند را در اون نزدیکی بالا رفت و کوه همچون فیلی بزرگی که مورد حمله شیری قرار گرفته باشه قرید و نالید همه چیز در آرامش و سکوت فرو رفت زیرا وقتی هانومان با تلاش بسیار تنها و با شکوه بر ستیق کوه ایستاد همه موجودات زنده پارسایان و حتی جانوران جنگل در شکاف درخت‌ها پناه گرفتند. های هانومان. همین که هانومان بزرگ خود را برای پرش قدرتمندانه که او را از فراز اقیانوس صد فرسنگی به لانکا می‌برد، آماده کرده بود، کوه ماهندرا لرزید و از بنیان به جنبش درآمد و پرندگان حراسان در آسمان چرخ زدند. و چنان فریادهای گوش خراشی کشیدند که اینگار با آزرخش برخورد کردند. آنگاه، هانومان همچون تیری از کمان راما به آسمان پرواز کرد و بر فراز موجها اوج گرفت. ساگارا خدای اقیانوس با شگفتی به این هیکل مهیب که بر فراز قلم روحش به پرواز در آمده بود نگریست و از ترس آن که آسیب ببیند یک سخره آبی را فراخواند تا در میان دریا ایستد. توری که هانمان بتواند لختی در آن لحظه بیاساید اما هرچند این دیرا سخره دور افتاده را ستود و هرچند خود سخره از هانمان تقاضا کرد که سر راهش استراحتی بکند و به یادش آورد که چگونه پدرش وایو در روزگاران کهن به به ها که این دیرا مانع پیشرفتشان شده بود کمک کرده اما هانمان از میان عبرها پرواز کنان پیشرفت حیولاها سوراسا مادر مارها و سیمیکهای سهمگین از دریا برخاستند و هانومان را به تهدید به بلعیدن کردند اما او که به خواست خیش اندازه‌اش را تغییر میداد از میان نیشهای سوراسا پرید و ها را کشت خانومان همچون گارودای اقاب پیش رفت تا به ساحل دوری رسید و شهر لانکا پیشا پیش خیش دید که در آسمان شناور بود و به اماراتهای سفید ابر مانندش قله کوه تریکوتا را میپوشاند. اینجا شهری بود که ویشوا کارمان آسمانی بنا کرده بود و راوانا راکشسای ستمگر اونو تحت فرمان خودش داشت. هانومان که امید نداشت بتواند طوری وارد شود که دیده نشود، تا رسیدن شب صبر کرد. و بالاخره خودش رو به صورت مورچه ای کوچک در و به دروازه نزدیک شد اما همین که وارد شهر با خانه های ایواندارش شد ایزد بانوی لانکا در میان دروازه راهش را بست او که خود را به صورت یک راکشاسی غول درآورده بود هانمان را مجبور به نبرد کرد اما هانمان با قدرت برتر خویش فوراً او را شکست داد و کشت ایزد بانو همچنان که میمرد به هانومان گفت که چگونه به رحماروزی. به او گفته بود که مرگش بلا و بدبختی به لانکا نازل خواهد کرد. آنگاه هانمان تا قلب پیش تاخت و در آنجا کاخ روانا را دید که زیر پرتوهای ماه می درخشید. ایوانهای کاخ بیشمار و حیاتهایش بزرگ و دلباز بود. هانمان می اینجا و اونجا صدها بانوی زیبای حرم روانا را ببینه. اما هیچ نشانی از سیتا در میان آنها به چشم نمی خورد. اتاق به اتاق، صحن به صحن و تالار به تالار کاخ رو گشت. اتاقهای رابانا رو بازرسی کرد. اتاقهایی که زنان در اونها زندگی می کردند و پوشپاکا عرابه هوایی رو نقطه به نقطه گشت. اما باز هم بیهوده بود. خانمان با درماندگی پیش خودش فکر کرد چطور می تونم اینطور با دست خالی برگردم؟ میمونهای دیگه به من چه خواهند گفت؟ اکنون که بموریت من شکست خورده. برام جز پشیمانی یا مرگ چه خواهد موند؟ آنگاه همینطور که سرگردان در صحن و سراها سرگردان پرسه میزد، به بیش زاری از درختان آشوکا رسید و در آنجا چشمش به سیتا افتاد که همچون پرتوی از محتاب در میان برگها می درخشید شناختنش آسان نبود زیرا اندوه اندام نازوکارای او را بسیار تحلیل برده بود و پیمانش برای نپذیرفتن تمامی لطفهای روانا تنها یک بالاپوش برایش باقی نهاده بود که روز را بوده شدنش برتن داشت آن جامه که اکنون جنده و پاره شده بود اندام رقتبار او را که از بیغذائی زار و نزار شده بود می پوشند هنگامی که هانومان به چهره اشکبار او که پریشان و غرق در اندوه بود خیره شد هیچ زیوری اونو نمی آراست هانومان برای خودش استدلال کرد و با دیدن نشانه مختلفی که راما به او گفته بود یقین پیدا کرد که او خود سیتاست. و هنگامی که میخواست به او نزدیک بشه آوای موسیقی شنید. همین که سربرگرداند راوانا را دید که داشت به سیتا نزدیک میشد. راکشاسا در میان دخترانی که هر یک مشعلی در دست بالا گرفته بودند بیرون می و هانومان حیرت زده از حیبت وحشتناک او آرام و سریع در میان درختان بیشتای آشوکا پنهان شد. راوانا همچنان که به سراغ سیتای سیاه گیسو میآمد تمام حرکاتش از عشق دم میزد و هانومان صدای او را میشنید که به سیتا می سیتا با چشمای درشت چهره زیبایت قلب من ربودی تمنا دارم که به همسری من در بیای. ابلهانه است که هنوز برای رامازاری می کنی. با من ازدواج کن و سوگلی من شو. راما اینک چه فایده ای برای تو داره؟ او یه تبعیدی و یه زاهده و تا حتی نمیدونی کجا زندگی میکنه. اما سیتا میان حرفش دوید و جواب داد: در فکر من نباش، بلکه بیشتر در فکر صلاح مملکت خیش باش. من همسر مرد دیگه ای هستم. بنابراین تو نباید چشمیت به من باشه. این قانون درستکارانه. همسر من با اونایی که جویای مهربانیش هستن مهربانه بنابراین اگر میخوایی زنده بمونی با او دوستی کن خیشتندار باش که این کار به صلاح توه، و منو به راما برگردون اگه این کار رو انجام بدی سرنوشت و ثروت خوبی در انتظارته اما اگه این کارو نکنی ای راوانا بیشک با پای خودت به سوی مرگ میری. هنگامی که شوهر ها این سخنان تلخ و گزنده رو شنید با خشم و خروش به سیتای زیبا جواب داد واقعا چه شگفته شیوه های عشق ورزی که از مشوق باید با عاطفه پشتیبانی کرد سیتا تنها به این جهت تو رو نمی کشم مهلت محدودی برای تو باقی میمونه کمی بیشتر از دو ماه که بگذره خواهی دید که اگه از آن من نشی دستور میدم که تو رو به آشپزخانه ببرن و برای صبحانم آماده کنن راکشسای خشمین با این سخنان رو برگردند و از راهی که اومده بود برگشت درختان و زمین را از شدت خشم خیش به لرزه دراورد. سپس هانومان که حقیقت موضوع رو دریافته بود، تصمیم گرفت کلمات دلنشین راما رو برای سیتا باز بگه. پسر وایو در حالی که از درختی به درختی تاب میخورد خود را به جایی رسوند که سیتا نشسته و با چهره ای همچون مرجان سرخ خم شد و دستهاش را رو روی سرش گذاشت و بدین سان با او سخن گفت. بانوی عزیز به گمان من تو سیتا ملکه راما هستی سیتا از شادی شنیدن نام شوهرش به هانومان که روی شاخه نشسته بود گفت من به عروس داشاراسا و دختر جاناکا پادشاه ویدها هستم اسمم سیتا و همسر رامای بزرگزاده ام هم. سیتا همچنان که میمون شریف گوش میداد سرگذشت رو برای او باز گفت و چون داستان را تمام کرد هانومان به او گفت ملکه من من به فرمان راما اومدم، او تن درسته و تنها نگرانیش آسایش توه. هانمان برای سیتا تعریف کرد که چطور راما و سوگریوا پس از همدستی به دنبال او گشتند و چطور زیور و پیرایه‌ای‌ها هایی رو که هنگام رو بوده شدنش به دست راوانا پایین انداخته بود پیدا کردند. و در پایان سخنون گفت: "اکنون این انگشتر رو که نام راما بر اون نقش بسته از من بگیر. رامای ی پهلوان خودش اونو داد تا تو به من اعتماد کنی." همین که سیتا انگشتری شوهرش رو گرفت و به اون نگاه کرد شادی چنان قلبش رو فرا گرفت که انگار واقعاً به شوهرش رسیده سپس از او پرسید ای بهترین میمون ها هانومان به من بگو که آیا واقعا راما زنده و سر حاله چرا نمیاد تا این دیوها را رو با آتش خشم خیش بسوزونه به نظر من اونا پر قدرت هستند و به خاک انداختنشون وقت زیادی میخواد اما او نه نقشه‌ای کشیده و نه برای نجات من قدمی برداشته. حانومان با عدای شایسته ترین احترام به نرمی پاسخ داد بانوی زیبا راما حتی نمیدونه تو کجا هستی همین که بهش بگم بیدرنگ به اینجا خواهد اومد لشکری از میمون و خرسها ها رو با هم با خودش میاره و با تیرهای کشندش لانکا رو از هر راکشاسایی شاسایی پاک میکنه نام تو همواره بر لب او هست و از اندوه ندیدن افسرده است. او بسیار کم میخوابه قرار و آرام نداره. و هیچ رغبتی به غذا نشون نمیده. اینک از تو تمنا دارم که اگر خودت با من نمیای، آی نشونه ای به من بده که او اونا بشناسه و همچنین پیغامی بده تا برای او و ال لاکشامانا ببرم. سیتا جواب داد به پسر کاوسالیا بگو که من جویای حالش هستم و او همواره سرور منه. به لاکشامانا مرد کم حرف، اما عزیزترین فرد در دل همسرم بگو که جویای احوالش هستم. اکنون ای هیچ کس جز راما برای نجات من نیاد بنابراین با تو هم نمیتونم بیام چون تو تنها پیام رسان من هستی به راما این پیغام رو بده راما من فقط یک ماه زنده میمونم و بیشتر از اون نمیتونم زندگی کنم قسم میخورم در این موقع گوشه پیراهنش را گرفت گره اونو باز کرد و گوهر تابان خانوادگی خود رو که در تاریکی شب میدرخشید به خانومان داد و گفت اینو هم به راما بده. هانمان तजी मी کرد، گوهر رو برداشت سخنان دلداری دهنده ی رو بر زبان راند از تا دور شد